صفحه سرانجام وزیر اعظم در مقابل سرسختی دختر خود تسلیم شد گرچه بسیار غمگین بود که نتوانست دختر خود را از این سرنوشتش شوم نجات بخشد ولی جز آن که به حضور سلطان رود و بگوید همسر فرداشب شما دختر خودم خواهد بود راه دیگری نداشت این چنین کرد سلطان از اینکه وزیر اعظم حاضر شده است دختر خود را به میل خود قربانی کند بسیار متعجب شد و به وزیر گفت چگونه حاضر شدی دختر خود را به همسری من برگزینی وزیر پاسخ داد قبله عالم به سلامت باد دخترم خودش مایل است افتخار همسری شما را به دست آورد تدریج چنین حکم کند که دخترم در زندگی خود یک بار همسری شهریار بزرگ را به دست آورد ولی آنکه بعد از آن جان خود را از دست بدهد در اینجا سلطان با لحن بسیار جدی به وزیر گفت ولی یادت باشد که فردایی آن شب شهرزاد دختر تو را هم خواهم کشت آن هم به دست خودت و اگر در این بار سستی به خرج دهی به خدا ساگم که خودت را هم خواهم کشت وزیر گفت ای شهریار تردیدی نیست که از کشتن فرزندم جگرم غرق به خون و اندوه خواهد بود ولی چار چیست وقتی شانهوش دخترم چنین پیش بینی شده است و همانطور که گفته اند در مقابل تقدیر تدبیری نتوان کرد گرچه من پدر هستم و دخترم را فوق دوست دارم ولی برای اجرای عوامر سلطان ناگزیرم وفاداری خود را نشان دهم شهریار پیشنهاد وزیر را پذیرفت و گفت می توانی هر وقت مایل باشی دخترت را برای همسری به حضور آوری پذیرعزم به نزد شهزاد رفت و ماجرا را برایش تعریف کرد. شهزاد آنقدر خوشحال شد که مثل آن بود که خدا دنیا را به او داده است. از پدر تشکر فراوان کرد که چنین خدمتی بزرگی به او کرده است و در این حال از پدرش از خواهی نمود که با اقدام خود او را دچار غم بزرگی کرده است و برای آرامش دل پدر گفت: مطمئن باشید که هرگز از ازدواج من با سلطان پشیمان نخواهید شد، بلکه برعکس خواهی دید که از پس از آن هر روز زندگی شما و مردم این شهر همراه با شادی و شگذاری خواهد بود حالا شهرزاد خود را آماده رفتن به حضور شهریار کرد و در لحظه آخر خواهر خود دینارزاد را صدا زد و به او گفت خواهر عزیز من به کمک تو احتیاج دارم تا در یک موضوع مهمی به من یاری کنی پدرم میخواهد که مرا برای همسری با سلطان به حضور او ببرد از این بابت هیچ تاسی به خود راه نده اما با دقت به حرفهایم گوش کن من همین که به قصر شهریار وارد شوم از شهریار درخواست خواهم کرد تا اجازه دهد تو هم به قصر بیایی و همون یک شب را که من با سلطان هستم تو هم در همان خوابگاه بمانی تا با حضور تو در آنجا خوشنود باشم چنان تو موافقت سلطان را بگیرم که مطمئن هستم خواهم گرفت تو باید هنگام سحر یک ساعت پیش از طلوع آفتاب مرا صدا کنی و این کلمات را بگویی. خواه جان، اگر خواب نیستی، خواهش دارم تا وقتی که سفیدی صبح نمایان شود که دیگر چیزی به آن نمانده، یکی از آن همه داستان‌هایی را که می‌دانی، مانند همیشه برایم تعریف کن. من هم بدون معطلی می‌گویم بسیار خوب. برایت می‌گویم. با امید به خدا و به این ترتیب، میتوانم تمام اهالی شهر را از این ناراحتی و وحشت که تا حال گرفتاران هستند ده دهم. دینارزاد جواب داد با کمال میل این خواهش تو را انجام خواهم داد. همین که شب فرا رسید وزیر شهرزاد را به قصر شهریار همراهی کرد و در داخل قصر به خوابگاه سلطان رفت و دست شهرزاد را در دست شهریار گذاشت. شهریار و شهرزاد که تنها شدند شهریار به شهرزاد گفت نقاب از چهره بردار. همین که چشم شهریار به زیبایی افتون کننده شهزاد افتاد در دل به او آفرین گفت و زیبایی او را در حد کمال یافت و به متوجه شد که چشمانش عشقالود است و علت گریه او را در شب عروسی از او جویا شد شهزاد جواب داد خواهری دارم که بینهایت مرا دوست دارد من هم همینطور مثل جانشیرین او را دوست دارم میخواستم از سلطان استدعا کنم که اجازه فرمایید امشبی را که در حضورتان هستم او هم در اینجا در قصد سلطان بگذراند و در گوشه ای از این خوابگاه شب را به آورد تا در آخرین لحظه زندگی خود بتوانم خواهرم را ببینم و با او بدرود گویم آیا سلطان با تقاضای من موافقت می و این محبت بزرگ را در حق من می کنند؟ شهری دستور داد دینارزاد را به قصد آوردند پس از آن، هنگام خواب شهریار و شهرساد به خوابگاه قدم گذاشتند و دینارزاد هم در گوشه‌ای که خواهرش بتواند او را ببیند دراز کشید در قدیم رست بود که پادشاهان در بستری می‌خوابیدند که از سطح زمین قدی بالاتر بود بستر دینارزاد هم در نزدیک بستری شهریار در محل قرار گرفته بود که دو خواهر به راحتی یکدیگر را میدیدند درست هنگامی که ساعتی بیش به طلوع سفیده صبح باقی نمانده بود. دینارزاد که تمام شب را بیدار مانده بود، تقپ تقاضای شهرزاد صدا زد. خواهر اگر خواب نیستی، خواهش میکنم تا طلوع سپیده صبح یکی از داستانهای جالب خود را برایم تعریف کن. افسوس که این آخرین بار برای قصه گفتن تو خواهد بود. ولی دلم میخواهد که آخرین داستان را هم بشنوم. شهرزاد بدون که جوابی به خواهرش بدهد، رو به شهریار کرد و گفت: آیا با تقاضای خواهرم موافق هستید؟ که داستانی را برایش تعریف کنم شهریار در پاسخ شهرساد گفت حتما با کمال میل حاضرم بشنوم آنگاه شهرساد گفت خوهر جان پس گوش کن تا داستانی برایت بگویم اولین شب از شبهای هزار یک شب مرد بازرگان و جن در زمان قدیم بازرگان زندگی میکرد که املاک و دارایی بسیار داشت و از مال دنیا کاملا بی نیاز بود. او علاوه بر ثروت زیاد، دارای مباشرین و خدمتکاران و غلامان بیشمار بود. این بازرگان ناچار بود برای امور بازرگانی خود هر چند وقت یک بار برای دیدار کسانی که با او داد و ستد میکردند به شهرهای مختلف سفر کند. روزی از روزها کار مهمی پیش آمد که بازرگان ناچار به سفر شد. اسب خود را زین کرد و چون مجبور بود از صحرای بی آب و علفی عبور کند، و در آن حدود آب و آزوقهای پیدا نمیشد لذا مقداری نان و خورما با خود برداشت و در خورجین اسب جای داد و به راه افتاد او بدون هیچ حادثه ای سفر خود را به پایان رسانید و پس از سر و سامان بخشیدن به کارها دوباره بر اسب سوار شد و راه بازگشت به شهر خود را در پیش گرفت در چهارمین روز سفر بر اثر گرمای طاقت فرسا و حرارت سوزان خورشید و همچنین گرمایی که زمین بر اثر تابش آفتاب پس می‌داد، ناراحت و بیقرار شد و برای آنکه اندکی استراحت کند، از جاده اصلی منحرف شد و به سوی نقطه‌ای که به نظر می‌آمد حالت ییلاقی دارد، اسبراند تا در زیر سایه درختانی که از دور دیده می‌شد، خستگی را از تن به کند. با به محلی رسید که درخت گردوی بزرگی با شاخه‌های انبوه و فراوان خود، سایبان خوبی به وجود آورده آششم ساری هم که آب زلال و شفافی در آن جاری بود در کنار آن دیده میشد. در اینجا بازرگان از اسب پیاده شد و در زیر سایه شاخه های گردو به استراحت پرداخت. خورجین را از پشت اسب برداشت و آزوقه خود را از آن بیرون آورد و در کنار چشمه آب نشست و به خوردن نان و خورما مشغول شد. و همینطور که هسته های خرما را در میآبد و اطراف پرتاب می کرد. پس از غذا، دست روی خود را با آب چشم شست و آنگاه وضو ساخت و به نماز خواندن ایستاد. بازرگان در حال سجود بود که ناگهان در برابر خود جنی را مشاهده کرد که بر سر گذشته زمان تمام موهای سرش سپید بود و هیکل قولاسا داشت و در حالی که ساتور بزرگی در دست داشت نزدیک او آمد و با صدای تساوری به بازرگان گفت ای بازرگان برخیز من باید تو را با این ساتور بکشم زیرا تو پسر مرا ای این سخنان را با لحن تهدیدآمیزی ادا کرد بازرگان که از هیکل ترسناکی چنین حیولایی با کلمات تهدیدآمیزش ترسیده و نزدیک بود قاله توهی کند به خود جرأت داد و گفت ای جن من چه گناهی مرتکب شدهام که سزاوار چنین مجازاتی هستم و میخواهی جانم را بگیری جن جواب داد تو پسرم را کشته ای من هم باید تو را بکشم بازرگان گفت من نه پسر تو را هرگز در عمرم ام. و نه او را میشناسم و نه آین او را کشتم جن جواب داد آیا تو خرما از خرجین اصبر نداشتی؟ آن را نخوردی و هسته آن را به اطراف پرتاب نکردی؟ بازرگان گفت چرا؟ من منکر آن چرا که گفتی نیستم؟ جن گفت پس در این صورت تو فرزنده مرا کشتی؟ به این که وقتی هسته های خورما و پوست سخت گردو را به اطراف پرتاب میکردی؟ در همان موقع پسرم که در حال عبور از مقابل تو بوده به چشم او خورده و او را کور کرده که بعد هم مرده است بنابراین باید تو را بکشم بازرگان فریاد کشید رحم کن من که او را نمیدیدم و قصد پسر پسرتو نداشتم این درست نیست و خدا را خوش نمیآید که کسی را بکشی که فقط هسته ی خورما و پوست گردوی خود را بدور انداخته و آنها به بحش جنی برخورد کرده که قابل دیدن نبوده است جن فریاد کشید، اینها به جای خود ولی تو خودت قبول داری که سبب مرگ پسر من شده ای و خودت اقرار میکنی که قاتل را باید کش بنابراین من هم میخواهم قاتل پسرم را بکشم انگاه جن موهای سر بازرگان را در چنگ خود گرفت و او را دمرو روی زمین خوابانید و ساتور خود را بالای سر برد تا سر بازرگان را از بدن جدا سازد بازرگان به گریه و التماس افتاد و گفت اگر به من رحم نداری، به زن و فرزندان بی هم رحم کن بیچاره از ته ناله ناله و شیون میکرد ولی ناله های او در دل جن تأثیری نداشت و جن همچنان ساتور را در بالای سر نگه داشته و به انتماس بازرگان گوش میداد جن گفت، ای مرد بازرگان، اگر خون هم گریه کنی سخنان تو در من کارگر نخواهد بود و نمیتواند مانع کشتن تو شود. آنچه مسلم است بچه من به دست تو به قصر رسیده و من باید تو را بکشم بازرگان همچنان التماس میکرد و جن هم در کشتن او اصرار میورزید سرانجام بازرگان فریاد کشید که آیا تو حاضری یک آدم کاملا بیگناه و بیخبر را که از کشتن پسرتو کمترین اطلاعی نداشته و او را نمیدیده به ناحق به قتل برسانی؟ جن جواب داد بلی حاضرم و دست دارم همکنون تو را بکشم شاه که قصش به اینجا رسید و میدید که هر لحظه سپیدهی صبح در حال طلو کردن است و میدانست که شهریار هنگام بام داد و قبل از در آمدن خورشید باید نماز بخواند و سپس به کارهای روزانه خود بپردازد لب از گفتار فرو برست در این هنگام دینارزاد گفت پناه بر خدا میبرم عجب قصه جالب و سرگرم کننده ای است شاهزاد پاسخ بقیه داستان به مراتب از آنچه که شنیدی دلپذیر تر و شیرین تر است و اگر شهری اجازه دهد و من امروز زنده بمانم بقیه آن را فردا شب دنبال خواهم کرد شهریار ها که قصه را تماما گوش کرده بود گفت میخواهم که بقیه داستان را فردا شب نقل کنید تو زنده خواهی ماند و من تا فردا کشتن تو را به تأخیر میاندازم زیرا میخواهم بقیه قصه را بشنوم. پس از پایان قصه. هر لحظه که بخواهم میتوانم تا را بکشم. شهریار این را گفت و از بستر بیرون رفت تا نماز صبحگاهی را به جای آورد تا پس از آن عمره و اعیان مملکت به حضورش بار یابند و به کارهای روزانه بپردازد. در قصر وزیر اعظم و سایر بزرگان مملکت آماده تشریف شهریار بودند. وزیر اعظم تمام شب را تا صبح خوابش نبرده و قصه فردا آنی را آنی راحت نگذاشته بود. زیرا به سرنوشت شما غم انگیز دخترش فکر میکرد که صبح در حضور سلطان و احیان مملکت باید دستور سلطان را در کشتن دختر خود اجرا کند وزیر اعظم غرق در این افکار پریشان و آزاردهنده بود و فکر میکرد که قیافه شهریار هنگام ورود به بارگاه سلطنتی چگونه خواهد بود و چطور به او دستور خواهد داد اما برخلاف انتظار حیرت دلپذیری کرد زیرا شهریار قیافه عادی و آرام داشت و دستوری هم برای کشتن شهرزاد صادر نکرد. شهریان مانند روزهای دیگر تمام روز را صرف رسیدگی به امور مملکتی کرد و نزدیک به پایان روز به اندرون رفت و بعد از صرف شام به خوابگاه وارد شد و با شهرزاد به بستر رفت. دینارزاد هم مانند شب گذشته سهرگاه از خواب بیدار شد و یک ساعت به طلوع آفتاب صدا زد: خواهر اگر خواب نیستی ممکن است خواهش کنم بقیه داستان شب پیش را برایم شهر دهی؟ دیگر چیزی به صبح نداریم. شهریار بدون آن که منتظر درخواست شهرساد برای اجازه دادن به او شود بیدرنگ گفت بقیه داستان مرد بازرگان و جن را ادامه بده و آن را به پایان برسان زیرا بسیار علاقه دارم که ببینم عاقبت آنها به کجا خواهد انجامید. شهرساد پس از شنیدن شهریار. بقیه داستان را چنین ادامه داد شب دوم همین که جن خواست سر از بدن بازرگان جدا سازد بازرگان با گریه و التماس گفت به خاطر خدا لحظه‌ای صبر کن تا من نفسی بکشم و کلمه با تو سخنگویم لا اقل اجازه بده که قبل از مردن زن و فرزندانم را ببینم و با آنها خدا حافظی کنم و دارایی خود را بین آنها تقسیم نمایم تا تکلیف خود را بدانند و بین آنها اختلاف نیفتد وقتی که از این کارها فارغ شدم دوباره به همین محل برمیگردم و هرچه تو اراده کنی دوباره هم عمل کن جن گفت اگر من تو را آزاد کنم و از اینجا بروی چه میلیونی دارم که دوباره به همین محل بازخواهی گشت بازرگان گفت اگر سوگند مرا قبول داشته باشی به تمام مقدسات عالم سوگند در وقتی که قول خواهم داد در اینجا حاضر خواهم شد و به قول خودم وفا خواهم کرد و خلاف تعهدم رفتار نمی کنم پرسید چقدر مهلت می خواهید تا دوباره به اینجا برگردی بازرگان پاسخ داد یک سال تمام زیرا من کارهای ناتمامی دارم که باید همه را سر و سامان دهم آن وقت برای مردن آماده خواهم بود و هیچگونه تعصفی هم از مردن نخواهم داشت من قول می دهم که توازده ما از این تاریخ در زیر همین درخت و در همین محل حاضر خواهم شد و خود را در اختیار تو خواهم گذاشت جن گفت کسی جز خدا حضور ندارد آیا حاضری به خدا یک تا سوگند یاد کنی و خدا را شاهد تعهد خود قرار دهی؟ مازگان جواب داد حاضرم و سوگند خود را تکرار کرد و گفت تو میتوانی به سوگند من اعتماد کنی و به این ترتیب جن سوگند بازرگان را پذیرفت و در کنار چشم سار ناپدید شد با نفسی به کشید و بسیار خوشحال بود ولی از سوی دیگر وقتی فکر می‌کرد سال دیگر باید به زندگی خود پایان دهد بسیار غمگین و افسرده می‌شد و خود فکر می‌کرد چه سن ویشتشو در انتظار او بوده و همچنین به تعهد و سوگند خود و وفای به عهد که برابر با از دست دادن این جانش بود می اندیشید او کسی نبود که به عهد و پیمان خیش وفادار نباشد به هر حال با این افکار دست به گریبان بود و اسب میران تا سرانجام به خانه خود وارد شد. همسر و فرزندانش با یک دنیا شادی به استقبالش آمدند و بازگشت او را جرشت گرفتند. ولی بازرگان غمگین بود و در خود فرو رفته بود و ناگهان شروع کرد بگیگه کردند. خانوادهش فورا متوجه شدند که پیش آمدی برای بازرگان در این سفر اتفاق افتاده است. همسر بازرگان گفت ای شوهر مهربانم ما با اشتیاق و علا منتظر بودیم که تو از سفر برگردی و ما را شاد کنی حالا میبینیم که قیافه در هم و متفکر به نظر میرسد مگر چه حادثه ای داده که تو را تا این حد قصدار و پجمرده ساخته است بازرخان شرح واقعه را از اتدا تا انتها و گفتگوی خود را با جن و ساگمد و تعهد خود را در برابر او برای خانواده خود بازگو کرد و بعد هم گفت که یک سال وقت دارد کارهای خود را به سامان برساند. و در سر یک سال باید نزد جن برود تا او انتقام پسرش را از او بگیرد وقتی خانواده بازرگان فهمیدند که موضوع از چه قرار است فریاد و نالهشان بلند شد همسر بازرگان صورت خود را چنگ میزد و موهای سرش را با دستهای خود می‌کشید و از ته دلزاری و ناله می‌کرد همه نگران و اندوهگین بودند و از در دیوار خانه اندوه می‌بارید روز بعد بازرگان دست به شد و اولین قدمی که برداشت، به دیه های خود را با طلبکاران صاف کرد. بعد پول فراوانی بین دوستان خود پخش کرد و به فقرا و اشخاص بیچیز صدقه و پول فراوان بخشید و دارایی فراوان خود را بین فرزندان و همسرش تقسیم کرد و برای فرزندان سالش که به سن قانونی نرسیده بودند، سفررستی گماشت و آنچرا که بابت مهریه و سایر تعهدات خود هنگام ازدواج تعیین کرده بود، تمام و به همسرش پرداخت. و مقادیری هم اضافه بر آن به همسرش داد و از او خواست بدیهای او را ببخشد سرانجام یک سال فرصت مقرر سپری شد و زمان وفای به عهد فرا رسید بازرگان از فرزندان و همسر خود خداحافظی کرد خانوادهاش می‌خواستند تا محل میادگاه با او بروند بازرگان خانواده خود را خیلی دوست داشت به آنها اظهار داشت از آمدن شماها برای من چه سودی حاصل خواهد شد تقدیر چنین بوده که عمر من تا این زمان باشد و در این زمان معین از شما عزیزانم جدا شوم و به سرنوشت دائمی‌ام بپیوندم شما هم باید مثل من فکر کنید و در برابر سرنوشت و تقدیر الهی تسلیم باشید بدانان این را گفت و برعکس زد و دور شد دیگر صدای ناله‌وفغان آنها را نمیشنید و راه دراز سفر را در پیش گرفت و چندین روز راند تا آقابت محلی میادگاه رسید در آنجا از اسب خود پیاده شد و در کنار چشمه آب نشست و با قلب انباشته از قم و اندوه و هزاران خیال دیگر در انتظار جن ماند همینطور که بازرگان در افکار خود قوته ور بود ناگهون حضور پیرمردی که سگ مادهی را با تناب به همراه می آورد، نظرش را جلب کرد پیرمرد جلو آمد و هر دو به یکدیگر سلام کردند و آنگاه پیرمرد رو به بازرگان کرد و از او پرسید: شما چرا در این صحرای هولناک که ارواح پلید در آن رفته آمد دارند پا اید؟ چه امر سبب شده است که مدتی در اینجا باقی بمانید؟ زیرا ماندن در این صحرا برای مدت طولانی خطرهایی را به دنبال میآورد که آخرش پشیمانی است و انسان در این صحرا هیچ گونه امنیت ندارد. وقتی انسان این درختان سبز و شاداب را نگاه می کند خیال می کند در اینجا زندگی می کند. در حالی که ماندن در اینجا به هیچ وجه مثللهحت نیست. وذقا شرحان خود و قرار دیدار خود را با جن برای پیرمرد بیان کرد. آنگاه پیرمرد از حیرت نزدیک بود سکته کند و با فریاد بلند گفت: عمل شما بیست ترین اعمال در میان انسان هاست شما که از چنگ نجاد یافته اید فقط به خاطر اینکه به او قول داده اید هم در اینجا حاضر شده اید؟ حالا با پای خود به استقبال مرگ شتافده این کار شما در دنیا نظیری ندارد. من آدم به این خوشقولی تا کنون ندیده ام که تا این حد به وعده خود احترام گذارد. من مایلم که شاهد گفتگوی شما و جن باشم. این را به گفت و در کنار بازرگان نشست و با او گرم صحبت شد. شهرسات در این موقع اثار داشت چون چیزی به طلوع سپیده نمانده است ادامین سخن را مکول به بعد می کنم. ولی بهترین قسمت داستان در دا قسمت پایانی داستان است. شهریار که تشنه شنیدن بقیه داستان بود، به شหัส فرصت داد و آن روز هم کشتن او را به تأخیر انداخت. شب سوم. چون شب سوم فرا رسید، دینارزاد مانند شبهای گذشته شหัส را صدا زد و گفت: خواهر عزیز، اگر خواب نیستی بقیه داستان را برایم تعریف کن. شهریار هم که تشنه شنیدن بقیه داستان بود و میخواست بداند جن با مرد بازرگان چه رفتاری کرده است به شاهزاد گفت بقیه داستان را بگو شاهزاد لب به سخن گشود و چنین گفت سرور من وقتی که بازرگان با پیرمردی که سگ ای را به همراه آورده بود مشغول صحبت بود متوجه شدند که پیرمرد دیگری هم به آنجا وارد شد و دو سگ سیاه هم دنبال او بودند قساجان که آنها همه با هم سلام و تعارف کردند، پیرمرد تازه وارد از آنها پرسید: شما در این بیابان چه کار می‌کنید؟ پیرمردی که با سگ ماده ای آمده بود، ماجرای بازرگان و جن را بیان کرد و گفت: بازرگان در مقابل جن سوگند خورده بود که امروز در این محل او را ملاقات کند و به همین جهت هم امروز به اینجا آمده است. پیرمرد دومی هم که بسیار کنجکاو بود، تصمیم گرفت در همانجا بماند. تا عاقبت کار بازرگان با, با جنرا دریابد. هنوز این دو با یکدیگر وارد صحبت نشده بودند که پیرمرد دیگری هم به آنها پیوست و از پیرمردهایی که آنجا بودن پرسید چرا این مردی که در کنار شماها نشسته این همه اندوخین به نظر میرسد و در خود فرو رفته است؟ آنها هم علت ناراحتی او و شرح بدبختی او را برای پیرمرد سومی حکایت کردند. با شنیدن شرح حال بازرگان، این پیرمرد هم علاقه و کندگاف شد که در همان محل باقی بماند تا شاهد پایان ماجرا باشد. هنوز مدتی نگذشته بود که ستونی از مه قلیز و قباری به شکل گردباد پدیدار شد و ها ناپدید شد و از میان آن هیکل قلاسای جن ظاهر شد. در حالی که ساتوری به دست داشت نزدیک بازرگان آمد، و بدون سلام و تعارف بازوی او را گرفت و گفت آماده ی مرگ باش من تو را خواهم کشت چون تو قاتل پسر من هستی بزرگون و سپیر سپیرمندی که در آنجا بودند از ترس بر خود میلرزیدند و به گریه و التماس پرداختند در این هنگام چون صبح نزدیک میشد شاهساز لب از گفتار فرو بست و قصه خود را مانند شب‌های گذشته به بعد موکول کرد شهریه که علاقه من بود بقیه داستان را بشنود باز هم یک روز دیگر کشتن او را به تخیر انداخت وقتی صبح شد و شهریار فرمان کشتن شهرزاد را نداد و زیر انظم از شادی در پوست خود نمی‌گنجید و کسی نمی شادی او را وصف کنند همین اعیان و رجال و خانواده شهرزاد و به طور کلی همه اهلی شهر قرد حیرت و شگفتی بودند شب چهارم شب بعد هنگام نزدیک شدن صبح دینارزاد مانند شبهای گذشته شهرساد را از خواب بیدار کرد و گفت خوهر جان اگر خواب نیستی بقیه قصه را بگو شهرساد با اجازه شهریار چنین گفت ای شهریار بزرگوار وقتی پیر مردی که سگ ماده به همراه داشت دید که جن میخواهد مرد بازرگان را با ساتور گردن بزنند بی اخیار خود را بیان جن و بازرگان قرار داد و دستهای جن را بوسید و گفت ای شاه جنیان از تو خواهش دارم دست نگهدار و این کار را نکن تا خشم تو اندکی فرو نشیند من سرگذشتی بسیار شنیدنی دارم تو سرگذشت مرا گوش کن و اگر دیدی که از ماجرای این بازرگان جذابتر و سرگرم کننده تر است در این صورت دست از کشتن او بردار و اگر چنین نبود آن وقت می توانی او را به قصد برسانی من با فروتنی زیاد از تو خواهش می کنم که این بازرگان بیچاره را مورد بخشش قرار دهی. یعنی صبح مجازاتش را به او ببخشید. تن با شنیدن سخنان پیرمرد، غفلت به فیک فرو رفت و بعد از مدتی گفت: "بسیار خوب، با حرفت موافقم." سرگذشت پیرمرد اولی و سگ ماده. پیرمرد چنین گفت: "درست گوشهایتان را باز کنید و به سرگذشت درد توجه کنید. این سگ ماده را که میبینید دختر عموی من یا بهتر گفته باشم همسر من است دوازده ساله بود که با او ازدواج کردم و چون از او خیلی بزرگتر بودم من در برابر او حالت پدری و بزرگتری و در این حال همسری هم داشتم مدت بیست و دو سال از زندگی زنوشوی ما می گذشت. ولی به علت نازایی همسرم صاحب فرزندی نشدیم و برای اینکه همسرم از خود ناراحت نشود انواع سرگرمی ها را برایش مهیا کردم و سر کردم او را کاملا خوشنود و سرگرم نگه دارم از آنجا که برای داشتن فرزند منطقه علاقه را داشتم فقط به خاطر داشتن فرزند کنیزی را خریداری کردم و از آن کنیز خداوند پسری به ما عطا کرد که بسیار زیبا و باهوش بود و آینده درخشانی در پیشانی او نمایان بود همسر من نمی توانست این فرزند مادرش را تحمل کند و نسبت به آنها شدیدن حسادت می کرد. ولی حسادت خود را از من پنهان کرده بود. من هنگامی به این مصدر پی بردم که دیگر خیلی دیر شده بود. پسر من با گذشت زمان بزرگ شده و به ده سالگی رسید. در یکی از روزها برای انجام کاری خانه را ترک کردم و به سفر رفتم. و فرزندم و مادرش را به همسرم که اعتمادی به او نداشتم سپردم. و همه گونه سفارشات برای مراقبت آنها کردم و از او خواستم که در من که یک سال به طول خواهد انجامید از آنها سرپرستی کنند تا من برگردم. در قیبت من همسرم فرصت را قنیمت شمرده و برای تسکین حسادت و نفرت خود نهایت استفاده را از این موقعیت می نماید. همسر من علم جادوگری می‌آموزد و پس از آن که این رشته تجابیات و دانش کافی به دست بیاورد یک روز پسر بیگناه مرا به نقطه دور افتاده و در آنجا با استفاده از جادو پسر من به صورت گسالهی در میآورد و سپس او را به دست یکی از رؤایای من می که او را پرورش دهد و پروار کند و به رعیت من می گوید که این گوساله را خریده است تا پروار کند بعد هم به همین ترتیب مادر پسرم را به صورت گاو در میآورد و او را هم به همان رعیتی که گفتم می وقتی از مسافرت یک ساله به خانه برگشتم اثری از آن و پسرم ندیدم. همسرم گفت کنیز فوت کرد و پسرت هم مدت دو ماه است که ناپدید شده. نمیدانم به کجا رفته است. از من گنابه هنگام کنیزم بسیار متاسف و متاسف شدم. اما درباره ی ناپدید شدن پسرم هنوز امیدی در دل داشتم که همه جا را جستی کنم. شاید اثری از فرزند دلبند خود به دست دارم. در دل به خود می گفتم، روزی پسرم پیدا خواهد شد. در نمی توانند نومیدی و یسب به خود راه دهد. مدتی گذشت و عید قربان فرا رسید. لازم بود که گاو یا گوساله ای را قربانی کنیم. رعایت من هم از دهستان گاوی را برای قربانی کردن در این روز به خانه من آوردند. بعدا معلوم شد که این گاو همون کنیز بیگل گن... <تصفيق>